نوار شماره 537 سی قسمت سوم، کتاب اناکارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی صفحه 58 دکتر گفت: خانم من حاضرم سوالات شما را جواب بدهم ولی اکنون اجازه میخواهم تا با همکار خود مشورت کنم. زن گفت: آیا باید شما تنها بمانید؟ دکتر گفت: اگر اجازه بفرمایید. فرانس شرباتی و زوجش خارج شدند و دو طبیب تنها ماندند. طبیب خانوادگی عقیده خود را بیان کرده اظهار داشت: گمان کنم که دختر به مرض سل مبتلا شده باشد زیرا طبیب معروف گوش داد آنگاه نگاه به ساعت خود کرده و گفت شاید دختر به این مرض مبتلا باشد ولی طبیب خانوادگی از روی احترام ساکت ماند طبیب معروف در تغییر سخنان خود گفت شما میدانید که تشخیص مرض سل در مرحله اولش خیلی دشوار است اکنون باید ببینیم چگونه میتوان ضعف و ناتوانی دختر را با تغذیه صحیح جبران کرد. طویب خانواده در حالی که می میکرد گفت ولی عواطف روحی و احساسات نفسانی را در این حالات فراموش نکنید. طویب معروف برای بار دیگر نگاهی بر ساعت خود افکند و گفت تا یک رو به ساعت دیگر باید خود را به ایستگاه را آهن برسانم. دکتر خانوادگی گفت گفتم که ما باید دستوری برای تغذیه و تقویت اعصاب دختر بدهیم دیگری گفت عقیده شما درباره مسافرت دختر برای تغییر آب و هوا چیست دیگری گفت مادر عقیده به سفر دارد زیرا به وسیله مسافرت دختر از چیزهایی که یاد یادبودهایی را به خاطرش میآورد دور می شود. طبیب معروف برای بار سوم به ساعت خود نگاه کرد و گفت خوب موعد رفتن من رسید. بسیار خوب، بروم. آنگاه به نزد شاهزاده خانم رفت و با عبارات علمی و دشوار برای او شرح داد که چطور باید کاترین آب بیاشامد و غذا بخورد. آنگاه اضافه کرد که مسافرت هم برای او خوب است. پس از آن با سرعت از خانه خارج شد تا به قطار برسد. شاهزاده خانم مطمئن شده و با دخترش کاترین مشغول کشیدن نقشه مسافرت گردیدند. در این موقع پدر کاترین داخل شد و شاستاد خانم گفت الکساندر گمان نمی کنم آمدن در این سفر با ما خیلی لازم باشد. کاترین فریاد ما مادر جان چرا پدرم با ما نیایید؟ بودن او همراه ما مناسب و ضروری است. شاستاد خانم چیزی نگفت. فرانس به دختر خود نزدیک شده و دست به گیسوی زیبای او کشید. به چشمان درشت و صاف او نگاه کرد. دختر حس گرد که پدرش در چشمان او آنچه را که درونش وجود دارد مثل اینکه به کتابی نگاه میکند میخواند چهرش از خجلت و شرمندگی سرخ شده سر به دیرف کرد. پرانس گفت کاترین می‌دانی چه باید بکنی باید هر روز صبح که از خواب بیدار میشوی به خود بگویی که چرا خوشحال و سعادتمند نباشم و چرا با پدر و مادر خود مانند همیشه به گردش و صبحانه نروم سخنان پرنس کاملا ساده و بی بود ولی کاترین مثل جنایتکاری که در حین انجام جرم او را دستگیر کرده باشند سراپا میلرزید. کاترین پیش خود چون این گفت: او همه چیز را میداند و همه چیز را میفهمد. او میخواهد به من بگوید قبیدل باش، ننگ خود را با کمال شجاعت و بردباری تحمل کن. دختر بیش از این طاقت نیاورد به بدای گریستن را گذاشت. آنگاه به اتاق خود فرار کرد. شافزاد خانم نگاه سرزان شامیزی بر شوهرش افکند و گفت چرا به دخترک بیچارم چنین گفتی؟ چرا او را محزون و گریان ساختی؟ آه پربردگارا چرا باید انسان فریب ظاهر مردم را بخورد؟ خداوندا چرا تو این اشخاص پست و پلید را مجازات نمی کنی؟ پرنس دانست که مقصود زوجش از ذکر اشخاص پست و پلید همان فرانسکی می باشد او خود را بالا انداخت و به سوی در رفت. آنگاه در حین رفتن ایستاده رو به همسر خود کرد و فریاد برابرد حقیقتش را بخواهی مقصر حقیقی تنها تو میباشی من با اینکه مرد سالخورده ای هستم حاضر بودم این جوان پست و بی را تعدیب کنم ولی کنم که تو با خواهش و اصرار او را به خانه ما دعوت نمودی و این بلا را بر سر ما وارد آوردی و اکنون دختر خود را به این اتباع حقوق باز نشان دهی تا لخت و او را معاینه کند. فصل دوم. به مناسبت ورود فرانسکی جشنی در خانه شاهزاده خانم بیتسی، دخترموی فرانسکی برپا گردید. شاهزاده خانم بیتسی دوست آنا کارنینا بود. از این رو، فرانسکی یقین داشت که دخترمویش آنا کارنینا را هم دعوت کرده است. فرانسکی در آن جشت با خانم و آقایان مشغول صحبت بود. آنان درباره باره خانه ها و ارسیت ها گفتگو می کردند. فرانسکی از رقاسهی تعریف می کرد که در آن موقع حاضرین صدای پایی را که به سالن نزدیک می شنیدند. شاستاد خانم بتسی صدای پای کارنینا را شناخت و نگاهی بر فرانسکی انداخت چهرش از خوشحالی باز شد و به طرف درد سر برگردند. آنا کارنینا با قامت راست و گام های محکم داخل سالان شد. بدون آن که نگاه به چپ و راست خود بکند، یک سر به سوی صاحب خانه رفت و در حالی که می میکرد با گرمی به او دست داد. آنگاه به طرف فرانسکی رو برگرداند فرانسکی از روی احترام در برابر آنا خم شد و نیمکتی تقدیم او نمود. ولی او چهره در هم کشیده و گونه هایش سرخ شد. بر روی ننشست. بلکه رو به ها کرده با سر به برخی از آنها سلام داد و بعضی از دستها را که به سوی او دراز شده بود در دست گرفته فشرده سپس بتسی را مخاطب قرار داده چنین گفت من به دیدن کنتس لیدیا رفته بودم من میخواستم زود به اینجا بیایم ولی نتوانستم من سرجون را در خانه کنتس دیدم او مرد زبان است در این موقع شاهزاد خانم میاکایا که همسر یکی از سفرا بود فریاد برآورد مقصودتان سرجون مبلغ انگلیسی که اخلاق عجیبی داراست میباشد آنا گفت آری او از هندوستان صحبت های شیرینی و عجیب و شدیدنی نمود حاضرین گرم صحبت شدد و آن سکوت و سردی که تا پیش از آمدن آنکارنینا در سالن حکم فرما بود برطرف گردید فراساد خانم تبسمی نمود و گفت: آری، این سرجون آدم بسیار فهمیده و با بااطلاعی است. او خیلی حراف و خوش صحبت است. من اخیراً او را در خانه پرنس ولادیمیر دیدم. آیا راست است که دختر پرنس ولادیمیر با کنت و پف ازدواج خواهد کرد؟ آری، هر دو خانواده بر این امر موافقت کردند. می‌گویند که این ازدواج بر عشق اسبار خواهد شد. همسر سفیر فریاد برابرد ازدواج از روی عشق چه حرف پوچ و چرندی امروز کیست که عشق را در ازدواج دخالت دهد؟ فرنسی گفت امروز عشق عامل اساسی در زناشویی به شمار می رود. زن گفت اشتباه می کنید. ما می بینیم که تمام زنان و شوهرانی که در زندگانی زناشوی خوشبخت هستند از روی عقل و مصلحت ازدواج کردند نه از روی عشق و محبت. فرونسکی گفت شاید ولی چه بسا از زنان و شوهرانی که فقط از روی مسلحت ازدواج کردند ولی در زندگانی زناشویی بدبخت و بیچاره شدند. زن گفت مقصود من از ازدواج با عقل و مسلحت این است که هر زن و مردی باید قبل از ازدواج معنی عشق را فهمیده و از جنون آن شفا یافته و پس از آن از روی عقل و مسلحت با هم زناشویی کنند البته چون ازدواجی پایدار و مغرون به سعادت خواهد بود عشق چون مرضی هسته است هر کس که می خواهد خوشبخت زندگی کند باید به آن مبتلا شود و از آن شفا یابد زوجی سفیر گفت در آن هنگامی که من در اول جوانی بودم عاشق یک جوانه نوازنده شدم ولی گمان نکنید که از این عشق فایده برده باشم شادزاد خانم بسی گفت شوخی را کنار گذارید به نظر من برای اینکه هر شخصی معنی عشق را بفهمد، باید اول طعم ناامیدی و محرومی را بچشد. زوجه سفیر که میدانست بیتسی به غیر از شوهر خود مشوق دیگری هم اختیار کرده است، از روی شیطنت گفت: "حتی پس از ازدواج؟" بیتسی پاسخ داد: "آیا ناامیدی در ازدواج اجازه دیگری جز عشق دارد؟" آنا عقیده تو در این باره چیست؟" آنا کارینا به این صحبت گوش میداد و تبسم کوچی بر گوشه لبانش دیده شد او در حالی که با دستکش سفید خود بازی می گفت اگر راست باشد که عقدهایی به تعداد سرها وجود دارد تردیدی ندارم که انواعی هم از عشق به تعداد قلبها وجود میباشد ترانسکی خیره به آنا نگاه میکرد و با بی‌صبری تمام منتظر پاسخ او بود ولی همین که این کلمات را بر زبان آورد نفس راحتی کشید و گویی که از خطر نجات پیدا کرده است یک مرتبه آنها رو به او کرد و گفت نامه از موسکو برایم رسید و حاکی از این است که کاترین شربانسکی سخت مریض است. فرانسکی ابرو در هم کشید و گفت راست میگویید؟ آنها خیره به او نگاه کرد و به تندی پرسید آیا این خبر در نظر شما مهم نیست؟ آیا چرا مهم است؟ آیا در نامه نوشته نشده که به چه علت کاترین مریض شده است؟ آنها پاسخی به او نداده؟ ایرو افتاده تا اینکه به پشت نیمکت بتسی رسید. آنگاه به وی گفت: یک فنجان قهوه به من بدهید. در حالی که بتسی قهوه را پر می کرد فرانسکی به آنا کارنینا نزدیک شد و برای یه بار دیگر از او پرسید: در این نامه چه نوشته شده است؟ آنا کارنینا بدون آنکه پاسخی به او بدهد گفت: من همیشه عقیده بر این دارم که مردان کمتر متوجه شرافت خود شدهاند با اینکه همواره به با آن افتخار و مباهات میکنند. آنگاه پشت میز کوچکی که هایی بر روی آن دیده میشد نشست. ترانسکی در حالی که فنجان چای در دست داشت، دنبال آنا کارنینا رفت و آن را تقدیم وین مود و گفت: من مقصود شما را از اینکه مردان منش شرف را نمیدانند ندانستم چیست. آنا بدون آنکه به او نگاه کند گفت: مقصودم این است که رفتار شما خیلی پست و زننده بود. مرد گفت: من این را می‌دارم ولی مسبب آن کی بود؟ آنا نگاه تندی بر او نمود و فریاد درآورد: چرا این را به من می‌گویی؟ فیروسکی نگاه آنا را با وقاحت تحمل کرد و پاسخ داد: شما می‌دانید برای چه؟ آنا گفت: تو مردی بدون قلب هستی. ولی چشمان آنا چیز دیگری غیر از زبانش میگفت. شما از اشتباه سخن می نه از عشق از شنیدن این جمله رحشه بر اندام او مستولی گردید و گفت من به شما اجازه نمی دهم ده بار دیگر اینگونه با خشونت صحبت کنید. ولی فوری آنا پی که با این توبیخ بیشتر بر گستاخی فرانسکی می افضاید. از این رو در حالی که خیره به چشمان او می گفت من چون میدانستم که تو در اینجا هستی امشب به اینجا آمدم تا به تو بگویم که باید جلوی این رویه را گرفت. از من کاری که مرا در برابر مردم خجل و شرمنده کند سر نازد است. ولی تو سبب میشوی که من حس گناه کنم. فروسکی به چهره آنکانینا نگاه کرد و حیران چشمان درخشان پیشانی صاف و گونه‌هایش را که از شدت تأثر گلگون شده بود، مجذوب زیبایی و دلربایی او شد و با سادگی و لحن جدی گفت از من میخواهی که چه بکنم آنا گفت از تو میخواهم كه به موسکو بروی و از کاترین پوزش بخواهی فرونسکی بدون آنکه چشم از چهرهٔ او بردارد گفت ولی من یقین دارم که تو این را نمیخواهی آنا كارنینا زیر لب گفت اگر به راستی مرا دوست میداری به آنچه که میگویم عمل کن تا آنکه خیال و وجدانم راحت شود. چهره یه فرانسکی باز شد و پاسخ داد. مگر نمی که تو همه چیز من در این دنیا هستی. من احساس میکنم که تو و من یک روح در دو بدن می و ممکن نیست من و تو رو کسی از هم جدا سازد. بدونی یکدیگر دیگر نمی توانیم به زندگانی ادامه دهیم. اناکارنینا با صدا یاهسته در حالی که چشمانش تکذیب می گفت من از تو یک چیز میخوام و اون این است که از این به بعد این گونه صحبتها را با من نکنی و به همین اندازه اکتفا کنی که با هم دوست باشیم. مرد گفت تو می دانی که به جای دوستی ما میتوانیم توانیم خوشبخت ترین مردم روزگار شویم، همچنان که ممکن است بدبختترین مردم گردیم. اختیار همه چیز به دست توست. آنا کارنینا خواست باز چیزی بگوید ولی فرانسکی مجال نداده در تقریب سخنان خود گفت من یک چیز است و می با به آن این است که به من اجازه دهی که این امیدواری و دردمندی را داشته باشم همچنان که اکنون این امید را دارم و درد میکشم اگر این حق را به من نمی پس اجازه بده که فوری از نظرت دور شوم و مادامی که وجود من تو را نگران و معذب میدارد، از این به بعد مرا نخواهیدید. دید. کار می ولی مقصود من این نیست که تو را از خود دور سازم. فرانسکی با صدای لرزانی گفت پس چیزی را تغییر ندهید و همه چیز را همینطور که هست به حال خود گذارید. شهر شما دارد میآید. در همان لحظه کارنین داخل سالن شد و مانند به همیشه آهسته راه می او با یک نگاه فوری همسر خود و فرانسکی را دید. آنگاه به سوی جایی که صاحبخانه بود رفت و به او سلام داد و با خانمها و آقایان تعارف کرد و در میان آنها نشست. فنجان چای را که شاهزاده خانم بتسی به او تقدیم کرده بود گرفت و با صدای شمرده و لحن تمسخرآمیز معمولی خود مشغول شد. او در حالی که شاهزاده خانم بتسی را مخاطب قرار داده بود و به حاضری نگاه کرد گفت: خانه شما میادگاه باهوشترین و زیباترین زنان شده است. خانهٔ شما مرا به یاد کاخ راسبوبه واقعه در فرانسه بیاندازد ولی شاستاد خانم بیتسی که تاقت شنیدن لحن تمسخرآمیزش را نداشت با زبردستی و مهارت او را وادار کرد که دست از تمسخور بکشد و سخن جدی بگوید درباره پیشنهاد نظام وظیفه از او پرسید کارنین هم که خودش نیز از پیشنهاد پیشنهاددهندگان بود درباره پیشنهاد خود با شور عجیبی دفاع کرد و پاسخ اعتراضاتی که بر او میشد داد اما آنا کارنینا و فرانسکی در خلوتگاه خود در برابر میز کوچک باقی ماندند همسفر سفیر در حالی که با چشم اشاره به فرانسکی و آنا و پس از آن به کارنین مینمود آهسته به خانمی که در جوار او نشسته بود گفت راستی رفتار آنها از اصول عرف اخلاق دور است و مناسبت ندارد گی به آنا و فرانسکی که دورتر از همه نشسته بودند نگاه کردند. فقط کارنین بود که به زوجه خود و رفیقش نگاه نمیکرد. شاهزاده خانم به به نوبه خود متوجه چشمک زدن و آهسته صحبت کردن خاوم گردید و ملاحظه کرد که چگونه آنا و فرانسکی دورتر از همه گرمی صحبت هستند. وی به هر زیرکی و مهارتی بود رشته صحبت را به خانم دیگری داده و خودش به آن طرفی که آننا بود رفته و با صدای بلندی به او گفت من از قوه بیان و استدلال شوهرت در شگفت هستم دستی او سختترین و دشوارترین مسائل و موضوعها را حل و قابل فهم می تبسم تبسوم رضایت بخشی بر لبان آننا نقش بست و بدون آنکه درست حرفای بیتسی را فهمیده باشد گفت درست است همین است آنگاه دست در بازوی بتسی افت با او نزد حاضرین رفت و مشغول صحبت با آنها گردید نیم ساعت بعد کارنین از جای برخاست و به زوجه خود پیشنهاد کرد که بروند ولی آن کارنینا بدون آنکه نگاه به او بکند پاسخ داد که او شام را با بتسی سرد خواهد کرد کارنین به عنوان خداحافظی اقامت خود را خم کرده و به تنهایی رفت. اعضای کالسکه ی خانواده ی کارنین هنگامی که آنا کارنینا با کنت فروفکی از خانه شاهزاده خانم به سی خارج شدند، از شدت سرما پا بر زمین میکوفتند. کنت فرونسکی به دوست خود آنا کارنینا به زبان فرانسه چنین گفت. پس تبخو خاصل کردیم که تو وعده به چیزی نداده ای و من هم چیزی از تو درخواست نکنم ولی تو به می میدانی که آنچه را من از تو میخواهم تنها رفاقت تو نیست بلکه آنچه را که از تو میخواهم یک کلمه میباشد و آن کلمه را که من میخواهم و جان من بسته با آن است و شاید تو از آن متنفر و بیزاری عشق است کارمینا با صدای آهسته این کلمه را تکرار کرد عشق. اش. آنگاه در حالی که پای خود را به روی پله کالسکه میگذاشت چنین اضافه کرد من از این کلمه متنفر و بیزارم زیرا معنی آن نسبت به من خیلی بزرگتر و امیختر از آن است که تو تصور می‌کنی. خداحافظ. خدا حافظ آنگاه دست خود را به سوی او اودرات کرد در حالی که خیره به چشمان است گریست کارنینا داخل کالسکه شد فرونسکی هست کرد که نگاه های آنکارنینا و گرمی دست لطیفش قلب او را می‌سوزاند. سوزاند. دست خود را که دست آنکارنینا را فشار داده بود بوسید در حالی که احساس مصررت زائر الوستی در خود مینمود به سوی خانه خود شتافت او میدید دید که در آن شب بیش از دو ماه اخیر به مقصود خود نزدیک شده است. در حالی که سر به زیر داشت و با کلاه خود بازی می کرد داخل خانه شد و چهرهش می درخشید. ولی نه به نور سعادت و خوشحالی بلکه به شعله مخفی شبیه یک شعله آتش در شب زلمانی وقتی آنکانینا شوهر خود را دید سر بلند کرده تبسمی نمود مثل شخصی که از خواب و رویا بیدار شود. وی در حالی که کلاه خود را بر روی یکی از نیم کس ها می افتاند گفت: آه هنوز نخوابیدی؟ راستینم خیلی تاجا جواب آنگاه بدون آنکه صبر کند به سوی اتاق خود رفت ولی پیش از آنکه از در خارج شود به شوهر خود گفت: الکسیس کارنینا موقع خواب شده است. کارنین با آرامی گفت: آنا با تو صحبتی دارم. آنا با تعجب فریاد براورد، با من؟ چه صحبتی داری؟ بفرمایید، آنگاه برگشته بر روی نیمکتی نشست و با جرأت و خیره به چهزه شوهر خود نگریست و گفت، چه صحبتی با من داری؟ اکنون وقت خواب است، نه هنگام صحبت. راستی چقدر آنکارنینا نیرنگ و هیلگر بود، لحن صدای او کاملا طبیعی و آرام بود، او چه خوب توانست تظاهر به خستگی و احتیاج به خواب نماید چنین به نظر آن رسید که او زرهی از نیرنگ و دروغ برتن کرده است که هیچ چشمی نمیتواند با نگاه های خود از آن نفوز کند و قوه مرموزی وجود دارد که برعظم و تصمیم او نیمساید و دست او را میگیرد کارنین گفت آنا بر من واجب و لازم است که تو را برهذر دارم. آن کارنینا فریاد برآورد؟ از چه چی چیز مرا برزارر داری؟ آنگاه با نگاه آرام و طبیعی او را نگریست ولی شوهرش به خوبی پی برده بود که او تغییر کرده است. قبلا آننا آنچه در دل داشت برای شوهرش آشکار میساخت اما از وقتی که از سفر برگشته است حتی صحبت کردن با او انتنناع می برزد. بالاتر از این، کارنین از لحن صدای زوجه خود آنا دانست که او عبدن احساس خجلت و شرمندگی نمی کند. نگاه های با سراحت تمام می گوید، آری درهای قلبم بر روی محبت تو بسته شده است و تا آخر بسته خواهد بود. کارنین با چمال آرامی و وضوح گفت، آنا، من می خواهم تو را بر برحضر سازم. زیرا مایل نیستم که از روی قرور و نادانی و عدم احتیاط حرکات یا رفتاری بکنی که نامت به بدی بر سر زبانها بیفتد. گرم گرفتن امشب تو با فرانسکی و صحبت طولانی شما انظار همه گی را متوجه ساخت. کارنین در حالی که به چشمان درخشان آننا نگاه می کرد، سخن می گفت. از نگاه مرموز و سرد آنا متعجب گردیده دانست که سخنگویی و تلاش او بدون نتیجه است. آنها مثل اینکه کلمات کارنین را نفهمیده است گفت همیشه تو این اخلاق را داری گاهی از سکوت و خونسردی من خورده میگیری و زمانی هم از پرحرفی و خوشحالی من ادری می کنی. کارنین با مهربانی گفت ولی تو هم آن ناماننده سابق نیستی آنا کارنینا با لحن آمیخته به تمسخوی فریاد برورد مگر من چه تغییری کردم همه چی می کارنین عرق پیشانی خود را پاک کرد و با آرامی و سردی گفت پس گوش بده و ببین از تو چه میخوام. تو میدانی که من رشک و حسادت را صفت پست و حقیری میشمارم و هرگز ممکن نیست تحت نفوذ آن قرار گیرم ولی قوانینی نیز نسبت به مالکیت وجود دارد که انسان نمیتواند آن را زیر پا گذارد جز اینکه خود را حاضر به دیدن مجازات بنماید من اهمیتی به یک گوشهنشین تو و فرانسکی و صحبت طولانیتان ندادم ولی ملاحظه کردم که تمام حاضرین از رفتار شما خوششان نیامد آنا کارنینا با بیاعتنایی شانه خود را حرکت داده گفت راستی من معنی حرفهای تو را نمیفهمم آنگاه زیر لب چنین گفت او اهمیت نمیدهد ولی چون حاضرین از رفتار ما خوششان نیامده است نگران می باشد سپس با صدای بلند گفت کارنین گمان میکنم تو مریض باشی. آنگاه از جای برخاست و خواست خارج شود. ولی کارنین دنبال او یکی دو قدم راه رفت و مثل این بود که میخواهد او را نگاه دارد. آنکارنینا ایستاد و با لحن تحکم گفت بگو ببینم چه می بگویی. یقین داشته باش که من گوش می دهم. سی بدانم مقصود از این چیزها چیست. کارنین گفت آیا من حق ندارم که آنچه را تو در دل داری بدانم؟ زیرا این امر نه فایده ای ندارد بلکه ضرر هم دارد اما قالبا در جستجوی این که بدانیم در درون خود چه داریم به چیزهایی را میابیم که پنهان ماندنه آن را شایسته تر میدانیم عواطف و احساسات تو بسته به وجدانت میباشد و من حق مداخله در آن را ندارم ولی من خود را در برابر خیشتن و یزدان مسئول میبینم که تو را به وظایف خود آشنا سازم خداوند من و تو را با رشته زناشویی به هم پیوسته و این رشته جز با ارتکاب جرم از هم گستیخته نخواهد شد و برای هر جرمی هم کیفری وجود دارد آنها در حالی که با گیسوی خود بازی می کرد گفت راستش را بخواهی من چیزی از حرفای دستگیرم نشد و متاسفانه خواب پلکان چشمانم را هم سنگیم تر کرده است.» سرنین گفت آنا تو را به خدا این گونه سخن مگوی شاید من اشتباه می ولی بدان که من این کلام را هم به خاطر تو و هم به خاطر خودم می من شوهرت می باشم و تو را دوست میدارم. دارم آنا سراپا بر روی سینه خم گردید و برق تعکم که در چشمانش می خاموش شد و پیش خود گفت اجابا او از عشق و محبت سخن میگوید آیا معنی آن را میداند آیا او میتواند دوست داشته باشد و اگر نمیشنید که مردم از عشق صحبت میکنند منی این کلمه را در فرهنگ خود پیدا نمیکرد آنگاه با صدای بلند گفت کاری باز هم معنی حرفهای تو را نفهمیدم بیشتر توضیح بده بگذار صحبت خود را تمام کنم آری، من تو را دوست میدارم ولی من نمیخوام از خودم هست بزنم، زیرا دو شخص مهم و اصلی در این قضیه تو و پسرم ام میباشید و شاید تو این کلام را پوچ و مهمل بدانی و یا حقیقتا من اشتباه کرده باشم. اگر چنین است از تو پوزش میخواهم ولی اگر ندانی که گفته ها و خیالاتم حقیقت دارد، از تو خواهش میکنم قدری فکر و اندیشه کنی و آنچه را در دل خاطر داری با کمال سراحت به من بگویی. کارنین چون خیلی مضطرب و نگران بود متوجه نشد که او چیز دیگری به غیر از آنچه چه تصمیم گرفته بود بگوید میگوید آنا در حالتی که نمیتوانست آن تبسم مرموزی را که بر لبانش نقش بسته بود پنهان بدارد کلام کارنین را قطع کرده و به تندی گفت کارنین من چیزی ندارم که به تو بگویم وانگهی هنگام خواب فرا رسید است کارنین آهی کشید و پس از آن کلمه‌ای بر زبان نیاورد و به اتاق خواب رفت. آنا کارنینا لباس خود را کنده و جامعه خواب پوشید و به دنبال کارنین به اتاق خواب رفت. او را دید که در رخت خواب خود دراز کشیده و لبانش بسته است و با اینکه چشمانش باز است ولی نگاهی به او نمی‌کند. آنا هم در رخت خواب خود دراز کشید ولی هر لحظه منتظر این بود که کارنین با او صحبتی بکند. آنا با این از صحبت شوهر خود خوشش نمی ولی در عین حال بدش هم نمی آمد که بداند او چه میخواهد بگوید. اما کارنین سکوت اختیار کرد. آنا مدتی منتظر ماند و پس از آن کارنین را فراموش کرده و شخص دیگری را به خاطر آورد. در فکر فرو رفت. تونین به نظر آنها کارنینا رسید که آن شخص را می بیند و صدای او را می شنود. به شدت بنایه زدن را گذاشت یک مرتبه صدای خورخور آرامی را شنید. پس از آن صدای نفیر لحظه‌ای خاموش. مثل این بود که کارنین به خود آمده است. دو مرتبه صدای خرخور منظم و آرام به گوش رسید.